پرسیدن محل دفن حضرت علی اصفر علیه السلام در کربانه کجاست؟ این که محل دفن شهدا کجا هست مسلم همین محدوده خائر حسینی سلام الله علیه هستش اما اینکه نقطه مشخصی رو ما دنبال کنیم و پیدا کنیم این درست نیست مهم این هست که در این حائر مقدس باید انسان حالت ذكر به خودش بگیره و حالت عذاب خودش بگیره و در این محدوده حائر هم شفاه جسمی و هم خصوصاً شفاع روحی رو از خدا بخواد